بله، چه می ما کره و نوشابه می خواهیم. صابون هم لازم داریم داریم.گرچه نان هم آنجاست، نان می خیر، ممنون، یک شیشه آب لیمو و دو بسته شیر هم بدهید. راستی، سعید هم چندتا تخم مرغ و یک بسته پنیر می خواهد. رامین؟ ما برنج و روغن داریم؟ بله، کمی برنج داریم، اما روغن نداریم پس لطفاً تخم مرغ، پنیر و روغن هم به ما بدهید